دوبہ اعلی ما <متصف> شروع منادا جنان چون واو یعنی چه منادا مُعرب باشن چه مربی بشه فعلی نمی‌کنه طابه اگر مضاف بود تابه اگر مضاف بود منصوب است چه بگیم یا زید دو باید اون طرف بگیم مثلا اگر ابن اول و صفت بود طابه مضاف بود بگیم یا دو ابن ها اگر گفتیم یا عبدالله <تصفيق> که منادا موارده من اون طرف باز میگیم چی ابن طابه مذاف منصوب است اما حالا منادا مخاطب باشه اما اگر طابه ما به جای مذاب مفرد کنیم مذاب نه یه چند صورت ممکن این مفرد تابه موردی شده باشه منادای موردی مثل که بگیم دا حفظالله حل در این صورت تابه به اعرابه این مفردی که تابع شده مورد میشه به اعرابه اما اگر مفرد تابع مبنی شد تابع منادای مبدی شد اونم مبدیه و چیزی که رفتش کنه حالا تا اگر تحکید بود یا صفت بود یا عطب بیان بود در این صورت دو جدید رفتش مندید حملن و لفت چون رفت و زم با هم شدیه و نصف شدیم حملن یعنی اگر ما داشتیم یازه تو منادای من نیست و تابع مفردی براش شاوردیم مثل ال آقل گفتیم یا سی دو آقل در این صورت ال آقل رو دجور میکنیم مخونیم میگیم ال آقل هملاً الان لفظه ال آقل هملاً الان مرد بروشو خب سه تا اینطور بود بدل چی؟ میگه ول بدلو کن مستقل به محتمال بدل یادتون باشه خون خب دیم در که داره جایه که چی؟ بدل به نیت تکرار آمله یا بدل میره جای مبدلونمه میشه بعد آمل مبدلونمه بتونه برسر بدل هم اوچ کن خب بدل چجوره؟ میگه بدل خودش نشه چی اصاب میشه؟ مثل منادای مصطفی یعنی میگوییم به خود بدل اگه بدل ما مفرد و معرفه باشه چجوری میگویند مخفی باشه منادا شده هرجور میخواد باشه باشه برقی میگیم یا زید یا زی دو؟ بدل میاری کورزو یا عبدالله باز دوباره میگیم چی کورزو کورزی که بدل است عین های مفرد معرفه وقتی باشه حالا می مناداش ممنی باشه یا مناداش فرقی حالا اگر اگر بدل مزاخت بود مناده هرچون می باشه باشه بدل منصور باشه بدل حکم خودشون داره انگار خودش به دنهایی شده منادا سلام سلامه داره ولبدلو کل مستقل ده مطلقا شد یه بال بدلونم از جای گفتم بدل دو بدل رو کلم مقطع مقطع رو خدا بعد رو که بدل اگر تابع شود مثل منادای مقطع رو ببینید چی گفتی مقطع رو محبی باشه مانا آجا میخواد مورد باشه در صورت که اوجه ما داشتیم تبابه چی که بخش میکردیم تبابه محبی بخش تبابه مورد دیگه توش نمیان. مجبور میشن بگن بوده لخوما ساهران و اون هما صاحرانه مطلا خبر خبر از بوده هماش حذب شده لام واسطه کی در اومده یعنی اصل جمله آیه چی بوده ان نهور تازانه لهما چون این هم باز مشکل داره مشکلش چیه تقدیره این همه زمیر و حصف زمیرشن زمیرشن برای رو میارم ونه که توجه رو جلب کنم ونه که تحقید رو ایجابه ها نسبه که که ها ممیون حصفش ایچنی بعد از اون برم یه زمیر دیگه که صورت حصف دارد این هم باز یک توجیه دیگر چه؟ توژیه ثبوت میگن امنه بود به مشبهت این دفعه آزانه اسمشه لصاهران خبر میگه بچه رو آزاینه میگه برای خاطر این موسیقی کلام به هم نبود چون اون طرف بوده ساهرانه همش با الف و نون بوده این طرف هم هازانه گفته تا وزن کلام به هم این نهازینه لساهرانه انگوان انسان داره برافایی میره زمانه اما این ام نهازان لساهران برای خاطری که موسیقی کلام رو حفظ کنه به جای هازینه آریت هم چی گفته یعنی در واقع غرز کرده آریه کرده آزنگ رو به جای اوجی آسام مثلا یادونه اقرا رو دیروز میگفت غروب رو به جاش چیکار کرده آریه گرفته مثلا از اینجا هازانه رو آریتا به جای هازینا آورده علت این کارش چی بوده؟ علتش این میده که مقاصد موسیقی کلام رو چند تا توجه شد طالعه حالا اگه مورد دیگه تو همین رسیدیم این ستا توجیه رو که ذکر میکنیم به طور خلاصه دو تا ستا دیگه هم پس این نهازانه لساهرانه متعولان متعولان اصلا حالا یه ترکیب دیگه هم باز بگیم. بعضی دیگه گفتن اصلا این نه وروف مشبهتون نیست مورد دیگه هم باز اضافه کنیم و نه به, به معنی نهمه حرفش چی چیه؟ جواب مشخص هازان مبتدا باز لام مشکل پیدا میکنه بعد بگیم بوده چی؟ لغما ساهران لام بر سال مبتدا دارد و لغما ساهران خبر و هازان لغما شهر شده لام بر سال ساهران دارد این بازی که تلکیب دیگر موشخص شد چی شد؟ اِن نشد؟ به معنای نعم حرف جواب آزان مقدر لحوما ساهران کرد با ما هر شد نام برکزنی ساختان اشکال این کلام گازگینه که نعم این نه به معنای نعم یک میلیون ایمون در کلام هرم خیلی برد میکن داشته و حمل قرآن به یک چنین کلام که از معلوم نیست به چه های سهد داره و نداره چیزیستی این اینم دو جهه این هم داره بسیم این نهازانه لساهرانه متحبه ول مؤنس ول مؤنس تا برای مؤنس ما چی داریم بعد زید بعد زه و تی و ولی وله موسناهو برای تصنیه مهندس چی داریم؟ تانه رفعن و تاینه نسبن و جلن دیگه محلی هم نه حالا اینجا که این شون نظر مرده محل محلن هم دیگه تانه در حالت رفعی و تاینه در حالت نسبی و جمع هر دوی جمعه وله جمعه ما اولا که بعد بایه اقابیه هام میشه هستیم چه اولا یا یه کاب آخرش میشه هستیم چی؟ اولا علا با اولا مدن اولا قسرن اولا بروس شد؟ هم به شکل ممدون هم به شکل محصول اونی که در قرآن دسید ممدون بعد و تدخلها و تدخلها ها و, تدخل و, و تنبی. و داخل می شود این اسماه اشاره می چیه های تنبیل هایی که برای تنبیل یعنی بیدارباش باش میده نسبت به مابنده و تلحبه ها تلحبه های این چید به آخرش بسید و به آخرش میچسبه کاف خطاب کافه خطاب زمیر نیست تا فقط میگه مخاطب یه نفره دو نفره مزدید های مرسه چید ها میگه زاکه زاکه که بگیم باز پیدایی چند مورد مثال در زاش اشاره به یک چیز کافش میگه ما به کی داریم به این آدم حالا اگه گفتیم زاکه یعنی یه چیزی رو داریم به یک خانون حرف خطاب درست کاف خطاب حالا اگه کاف خطاب بیاد بلا لامن بدون قام برای چیه؟ متوسط زاکه برای چیه؟ متوسط زا برای نزدیک زاکه برای؟ بلا لام اندر متناسب و معهم میخوره بلا اگر کاف بیاد بالام دلیل باید که باید دقت کنید ما در تصنیه کاف میتونیم بیاریم بگیم زانه کن. اما لام دیگه آورده بگی زانکه داریم اما زانه لکه بگید نداریم متشد چی شده نه الافل مسننا مگر در مصنا که دیگه اصلا لامی وجود میگن اگر زانکه بگید یا تانکه بگید درسته اما اگه بگی زانه لکه تانه لکه طرف فکر بکنه زانه مقتداست لکه چیه؟ خبرشه یعنی این دو ماه بپست نمیم من بگه زانه لکه خودش یک کبانه آن بگه یه جمعه حسابش گرفتی چی گفتم یه نه؟ ام لافر مصنم که در تصنیه ما بگید چی؟ در تصنیه کاف خطاب میاریم اما دیگه لام آورده و بجام و به جم هم داخل نمیشه لام کی اندمن ماده نزد کسی که مد میده به اولا اگر اولا میگه میتونه بگه اولا نگه اولا نشه اولا نشه اما اگه اولا میگه دیگه نمیتونه بگه اولا بگی گفته بگی در بیشه کسی که مرد کاف فقط میتونه بیاره دیگه لام آورده پس لام به چند جا در نمیاد یک تصمیه دو جمع به که میگه مرد که لام بدون کاف هم نده هر لام بیاد کاف سر, سر. و فیما وفی دخل هر خود تنبیم و هر کجایی که حرف تنبیه داخل شده باز لام آورده بکید یعنی شما هازا میتونید بگید هازا که هم میتونید بگید هازا که کاف بید. اما هازا لکه گفته نمیشه هدار شدیم پس لام در چند جا آورده نمیشه سه جا یکی تصنیه یکی جمع انگام مد یکم دل... کلماتی که حرف تنبیه کاف در کجا آورده نمیشه هیچ کجا کاف همه جا آورده حایه تنبیه در کجا آورده نمیشه همه جا آورده این نامی که دسته جا آورده نمیشه و فی ماده الا او عارف تنبیه و منها الموصول بذارید باشه چند کلمه جلسه 24 ام